داستان دختر شاه پریان نوشته لرد لورد دانسنی ترجمه دکتر آرش حجازی ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افسانهای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش بانو بنفش بخش بیست و شیپور آلوریک آلوریک سالهای فرساینده بسیاری در سرزمین های خالی به سوی شمال سرگردان بود و پاره چادر خاکستری فرسود اش در باد بر تیرگی غروب سرد می افسود و مردم کشتزارهای دور افتاده هنگامی که چراغ‌های های را روشن میکردند و کومه ها در برابر سبز روشن آسمان به تیرگی می‌گراییدند. گاهی صدای کوبش چکش‌های های نیو و زند را به وضوح از میان سکوت دشت هایی میشنیدند که هیچ فرد دیگری در آن گام نمیگذاشت. و شاید فرزندانشان که از پنجره به بیرون خم می شدند تا ببینند که آیا ستاره بیرون آمده یا نه؟ در جایی که دمی پیش تنها خاکستری غروب دیده میشد، شبه عجیب خاکستری آن چادر را می دیدند که پاره هایش آن سوی آخرین پرچین ها تکان تکان می بامداد روز بعد حدس ها و پندارهایی پدید می آمد و لذت و ترس کودکان و قصه هایی که بزرگترهایشان برای آنها می گفتند و اکتشاف دزدکی تا لبه دشتهای گریز همراه با شرم از میان شکاف های پوشیده سبز آخرین پرچین ها هرچند نگریستن به سوی شرق ممنوع بود و شایع ها و انتظارها و همه این چیزها با آن شگفتی میامیختند که از سوی شرق میامد و چونین میشد که این داستان به افسانهای ای میپیوست که سالها پس از آن بامداد زنده ماند اما آلوریک و چادرش رفته بودند بدین ترتیب آن گروه مرد بی همدم تنها پسرک ماه گرفته و آن مرد دیوانه و آن چادر خاکستری تنها با تیرک بلند مارپیچش روز پشت روز و فصل پشت فصل به سرگردانیشان ادامه دادند و دیگر تمامی ستارگان را می و با هر چهار باد آشنا شده بودند و نیز با باران و مه و تگرگ اما ردیف های, پنجره های روشن گرم و خوشامدهای شبانه تنها برای آن بودند که با آنها وداع کنند با نخستین روشنایی نخستین لرزه سپیده آلوریک از رؤیاهای بیتاب بیدار میشد و نیو حیاهوکنان برمیخواست و پیش از پیدایش هر گونه نشانهای از بیداری بر های تیره خاموش جستجوی دیوانوارشان را ادامه میدادند. ها بود که تیل ترکشان کرده بود تیل که در ترانه سوزانش پیروزی آنها را پیشگویی کرده بود، تیل که الهام‌هایش در سرترین شبها آلوریک را شاد و در ناهموارترین ورترین راه‌ها هدایتش می‌کرد، یک روز غروب ناگهان درباره موهای یک دختر جوان ترانه خواند، همان تیلی که سرگردانیشان را راهنمایی می‌کرد و سپس یک روز به هنگام غروب که توکایی آواز می‌خواند و بهار تا کیلومترها در شکوفه بود، به سوی خانه های انسانها بازگشت و با آن دختر جوان ازدواج کرد و دیگر به هیچ گروهی از سرگردانان نپیوست. اسبها مرده بودند، نیو و زنت هرچرا که داشتند و روی تیرک حمل می‌کردند، سال‌ها سالها گذشته بود، یک بامداد پاییزی آلوریک اردو را ترک کرد تا به خانه های انسانها برود، نیو و زند به یکدیگر چشم دوختند چرا آلوریک از راه را از دیگران میپرسید به نابه دلیلی ذهنهای دیوانشان هدف او را سریعتر از اشراق خردمندان دریافته بود مگر او پیشگویی‌های نیو را برای راهنمایی و که را در همپیمانی با ماه شب چهارده به زند گفته میشد در اختیار نداشت آلوریک به خانه‌های انسان‌ها آمد و پرسید و تنها تعداد کمی از آنها درباره سرزمین های شرقی سخن گفتند، و اگر از سرزمین هایی که سالها در آنها آواره شده بود سخن میگفت به همان اندازه اعتنا می‌کردند. کردند که اگر میگفت چادرش را بر لایه‌های های رنگین هوا اوستوار می کند که در آسمان نزدیک غروب میدرخشند و فرو مینشینند و تیره می شبند. و آن اندک مردمی که به او پاسخ دادند تنها یک چیز می گفتند. تنها غیب گویان میداند هنگامی که آلوریک این را دریافت از دشتها و ها بازگشت و دوباره به چادر خاکستری کهنه در در هایی بازگشت که کسی به آنها نمی‌اندیشید و نیو و زند خاموش نشستند و چپچپ چپ به او نگریستند چون می‌دانستند او دیگر به دیوانگی و گفته‌های ماه اعتماد ندارد روز بعد پس از آنکه چادر را در سرما جمع کردند، نیف بدون هیاهو راه را رهبری می کرد. چند هفته نگذشته بود که یک روز صبح، آلوریک بر لبه دشت های ها با کسی برخورد کرد که سطلش را کنار چاهی پر می کرد و کلاه باریک و بلند مخروطی و حالت رمزامی بیانگر این بود که به یقین یک غیب گوست. آلوریک گفت، ای استاد هنرهایی که انسانها از آنها حراسانند، پرسشی درباره آینده دارم. و غیبگو سرش را از روی سطلش برگرداند و با چشم های شکاک به آلوریک نگریست. چون از لباس مندرس مسافر چونی نمی نمینمود که به تواند دست مزد پیشگوی آینده را بدهد. و دست را باز گفت. آلوریک در بدرش چیزی داشت که شک غیبگو را برطرف کرد. بنابراین به نوک برجش که از میان تودهی مورد سبز سر برآورده بود اشاره کرد و از آلبریک خواست پس از پدیدار شدن نخستین ستاره قروب به آنجا بیاید تا در آن ساعت خوش آینده را برای او روشن کند و نیوزن دوباره دریافتند که رهبرشان به دنبال رؤیاها و رازهایی است که از سوی دیوانگی یا ماه نمیآیند و خاموش و بی حرکت اما با اندیشه های سرشار از نگاره های خشمگی نشستند تا آلبریک آنها را ترک کرد. آلبریک در هوای روشن پیش از ستاره غروب از میان دشت های انسان ها به سوی درب بلوطی برج غیبگو آمد که مردها با هر نسیمی آن را می نواختند. کاراموز غیبگو جوانی در را باز کرد و با الوریک را از راه پلکان چوبی کوهنی که موشها بهتر از انسانها میشناختند به اتاق بالایی غیبگو راهنمایی کرد غیبگو شنل ابریشمی سیاهی پوشیده بود که آن را از آن آینده میدانست. بدون آن نمی توانست سالهای آینده را پیشگویی کند و هنگامی که کاراموز جوان خارج شد به طرف کتابی رفت که روی میز بلندی قرار داشت و سپس رو به آلوریک کرد و پرسید چه میخواهد بداند آلوریک پرسید که چگونه باید به سرزمین پریان برسد سپس غیبگو جلد تیره ی کتاب بزرگ را گشود و ورق زد و تا مدت درازی تمامی هایی که ورق میزد سفید بودند اما کمی بعد نوشته هایی در کتاب پدیدار شدند اگرچه این نوشتار شباهتی به هیچی از نوشتارهایی نداشت که آلوریک دیده بود و غیبگو توضیح داد که کتابهای چنین از همه چیز میگویند اما او که تنها به سالهای آینده اهمیت میداد هیچ نیازی به خواندن گذشته نداشت و بنابراین کتابی تهیه کرده بود که تنها از آینده میگفت اما اگر دلش میخواست دیوانگی های کنونی انسانها را هم مطالعه کند می توانست بیشتری از دانشگاه غیبگویی فراهم کند. سپس مدتی به خواندن کتابش مشغول شد و آلوریک صدای موشها را شنید که به نرمی به کوچه ها و خانههایی باز می گشتند که در پلکان ساخته بودند. و سپس غیبگو آنچه را که در آینده می جست یافت و به آلوریک گفت در این کتاب نوشته شده است که او تا هنگامی که شمشیری جادویی با خود دارد، هرگز به سرزمین پریان نخواهد رسید هنگامی که آلبریک این را شنید دست مزد غیبگو را داد و با اندوه دور شد چرا که مخاطرات سرزمین پریان را می شناخت می دانست هیچ شمشیر معمولی که بر سندانهای انسانها پوتک کاری شده باشد نمی تواند در برابر آنها مقاومت کند نمی جادویی که در شمشیرش وجود داشت بو یا مذهی همچون بو یا مذهی آزارخش در هوا می پراکند که از مرز شفق می گذشت و در سرزمین پریان پراکنده میشد. نیز نمی دانست که شاه پریان بدین ترتیب از حضور او آگاه می و مرزش را از دسترس او دور می کرد تا آلوریک دیگر نتواند قلم را به درد سر اندازد. اما آنچرا که غیبگو از درون کتابش به او گفته بود باور داشت. و بنابراین اندوهگین دور شد و پلکان بلوطی را در دست زمان و موشها ترک کرد از بیشه مردها و از میان دشتهای انسانها گذشت و به نقطه دلتنگ کننده ای رسید که چادر خاکستریش سوگوارانه و همچون نیو و زند که کنارش نشسته بودند گرفته و خاموش از میان سرزمین متروک سر برآورده بود و سپس برگشتند و به سوی جنوب آواره شدند چون اینک سفر به هر سو در دیده آلوریک که حاضر نبود شمشیرش را وا بگذارد و بدون راهنمایی جادو به رویاروی روی خطرات جادویی برود به یک اندازه ناامید کننده بود و نیو و زند در سکوت از او پیروی کردند دیگر او را با پیشگویی های دیوانوار و آنچه ماه گفته بود راهنمایی نمی کردند چون می با دیگری مشورت کرده است. از راههای فرساینده سرگردان و تنها به سوی جنوب آمدند و مرز سرزمین پریان بالایی های غلیز شفق هرگز پدیدار نشد. با این وجود آلوریک نمی خواست چمشیرش را شوافا بگذارد. چون خوب میدانست که سرزمین پریان از جادوی آن می و با جنگ که تنها برای آدمیان خطرآفرین بود امید چندانی به بازگرداندن لیرازل نداشت و پس از چندی نیو دوباره پیشگویی کرد و زند در شبهای ماه بدر دیرگاه می‌آمد تا آلوریک را برای شنیدن قصه‌هایش بیدار کند و با وجود همه رمز و راز زنت به هنگام سخن گفتن و همه سرور نیو به هنگام پیشگویی آلوری که اکنون دیگر میدانست که این قصه ها و پیشگویی ها خالی و بیهودند و هیچ کدام از آنها او را به سرزمین پریان نمی رسانند با وجود این آگاهی دردآور در آن سرزمین تنها همچنان چادرش را به هنگام سپید جم می کرد همچنان پیش می رفت همچنان مرز را جستجو می کرد و ماهها چنین چونین گذشت و یک روز که خارزاری وحشی و غیرمنتظره از لبه زمین تا برهوتی سخرعی کشیده شده بود که آلوریک آن چادر زده بود به هنگام غروب زنی را با کلاه و شنل جادوگری دید که خارها را با جارویی می رفت. و هر بار در جهت مخالف دشتهایی که می شناسیم به سوی برهوت سخرعی سوی شرق و سرزمین پریان جارو میزد. با هر جارو بادی شگرف از خاک خشک و ماسه به سوی آلوریک میوزید. آلوریک از چادر مندرسش خارج شد و به طرف او رفت و در همان نزدیکی ایستاد و رفت و, رفت و روبش را تماشا کرد اما جادوگر همچنان به کار مشقت بارش ادامه داد و در پشت غباری برخواسته از دشتهایی که میشناسیم راه میرفت و جارو میکرد. و پس از چندی همانطور که جارو می کرد سرش را بالا آورد و به آلوریک نگریست و آلوریک دید جادوگر زیراندریل است پس از این همه سال دوباره جادوگر را می دید و زیراندریل در زیر پاره های جنبان شنل آلوریک شمشیری را دید که یک بار بر روی تپهش برایش ساخته بود غلاف چرمیش نمی توانست جادوی بودنش را از جادوگر بپوشاند چون بوی جادویی که از آن بر و در غروب شناور و گسترده میشد، شد می شناخت آلوریک گفت ننه جادوگر و جادوگر در برابرش خم شد اگر چه جادوگر بود و سنش به سالها پیش از پدر آلوریک می رسید و هرچند همکنون در ارل بسیاری فرمان را فراموش کرده بودند جادوگر او را فراموش نکرده بود آلوریک پرسید آن هنگام قروب با جارویش در آن خارزار چه می جادوگر گفت جهان را جارو می کنم. پالبریک متعجب بود که در غبار خاکستری سوگواری که پی در پی از دشتهای ما رانده شد و آهسته به درون تراکم تاریکی ماورای دشتهای ما فرو می رفت با جارویش چه چیزی را از جهان میراند؟ گفت نن جادوگر چرا داری جهان را جارو می کنی؟ گفت چیزهایی در جهان هست که نباید باشد؟ سپس آلوریک مشتاقانه به ابرهای خاکستری قلطان در پس جاروی او اونگریست که به سوی سرزمین پریان رانده می گفت نن جادوگر آیا ممکنه منو هم به اونجا بفرستی؟ دوازده ساله که در پی سرزمین پریان هستم و هیچ پرتایی از هاش ندیدم؟ و جادوگر پیر مهربانانه به اونه گریست. سپس به شمشیرش نگاهی انداخت و گفت او از جادوی من حراسان است. و به هنگام سخن گفتن اندیشه یا رازی در چشمهایش تلو او کرد. آلوریک گفت کی؟ زیراندرل چشمهایش را پایین آورد و گفت خود شاه. و سپس به او گفت که آن شهریار جادویی چگونه خود را از هرانچه یک بار او را آزرده واپس میکشد و به همراه او هر آنچه دارد واپس کشیده می و هرگز حاضر نیست از حضور جادویی برابر با جادوی خودش پشتیبانی کند. بالوریک نتوانست باور کند که جادوی نهفته در غلاف سیاه که برای چنین شاهی این اندازه مهم باشد. جادوگر گفت این شیوه اوست. پس پس آلوریک نتوانست بپذیرد که شاه سرزمینش را واپس کشیده است. زیروندرل گفت او این توانایی را دارد. و اما آلوریک همچنان میخواست با این شاه خوفناک و تمامی نیروهایش روبرو شود. اما غیبگو و جادوگر به او هشدار داده بودند که نمیتواند با شمشیرش به آنجا برود. چگونه می توانست غیر مسلح از میان جنگل سرخ بگذرد و به سوی کاخ شگفتی ها برود؟ چون رفتن آنجا با شمشیرهای ساخت انسانها با بیسلاح رفتن یکی بود؟ فریاد زد، ننه جادوگر، من هرگز دوباره به سرزمین پریان نخواهم رفت و آرزو و رنج نهفته در صدایش قلب جادوگر را لرزاند و آن را به دلسوزی جادویی کشاند گفت خواهی رفت آلوریک در آن غروب غماور نیمی ناامید و نیمی در رویای لیرازل ایستاده بود در همین هنگام جادوگر از زیر شنلش وزنه ای را بیرون آورد که زمانی از نانوایی گرفته بود گفت این را بر تیغه شمشیرت بکش از دست تا نوکش این تیغه را جادو میکند می و شاه هرگز در نخواهد یافت که چه شمشیری نزدیک می شود آلوریک گفت در این صورت آیا این شمشیر می تواند باز هم برای من بجنگد؟ جادوگر گفت نه اما هنگامی که از مرز گذشتی این نسخه را بردار و آن را بر هر جای تیغه که با وزنه برخورد داشته است به مال و دستش را دوباره به زیر شنلش برد و پوستی را که شعری برا نوشته شده بود بیرون آورد و گفت این دوباره جادویش می کند آلوریک وزنه و نوشته را گرفت جادوگر هشدار داد مواظب باش این دو چیز با یکدیگر تماس پیدا نکنند سپس گفت از مرز که گذشتی ممکن است دوباره سرزمین پریان به جایی که میخواهد ببرد اما دران هنگام تو درون مرزهایش خواهی بود آلوریک پرسید نن جادوگر اگر این کار را بکنم او بر تو خشمگین نخواهد شد سیروندرل گفت خشمگین خشمگین او با بیشترین غذاب با نیروی ما برای نیروی ببر بر من خواهد تاخت آلوریک گفت پس من این کار را با شما نخواهم کرد نن جادوگر سیروندرل گفت برای من چه اهمیتی دارد شب در حال گستردن بود و خارزار و آسمان همچون شنل جادوگر به سیاهی می‌گرایید. جادوگر اکنون داشت میخندید و در سیاهی فرو میرفت و کمی بعد شب تنها خنده و تاریکی بود اما آلوریک جادوگر را نمیدید سپس به راهنمایی نور آتش تنهای چادر صخرهایاش به طرف آن راه افتاد و همین که بامداد بران تنهایی تجلی کرد و تمام آن سخره های بیفایده آغاز به روشن شدن کردند وزنه را برداشت و به نرمی چندان بر هر دولبه شمشیرش مالید که جادو از آن زدوده شد و این کار را در چادرش و هنگامی کرد که پیروانش در خواب بودند چون نمی‌خواست بگذارد بفهمند از جایی غیر از دیوانگی های نیو، و آنچه زند از ماه شنیده بود یاری جسته است. اما خواب آشفته دیوانگی چندان جرف نیست که صدای مالش نرم وزن بر شمشیر نیو را بیدار نکند و نگذارد با چشمی نیم باز و هرزه آلوریک را تماشا کند. و پس از اینکه این کار در نهان انجام و در نهان تماشا شد، آلوریک دو همراهش را صدا زد و آنها آمدند و چادر پاره پاره را جمع کردند و تیرک بلند را برداشتند و دارایی ناچیزشان را بران آویختند و آلوریک بیتاب از اینکه سرانجام به دشتی که چنان زمان درازی سرگردانش کرده بود خواهد رسید بر لبه دشتهایی که میشناسیم به افتاد و نیو و زند پشت سرش میآمدند و تیرک را که بارشان بر آن تاب میخورد و پارههایش در باد تکان میخورد بر شانه گرفته بودند. کمی بعد به درون دشتهای ما و به سوی خانه های انسانها آمدند تا غذا و مایاجشان را فراهم کنند. و بعد از ظهر آنچه را که نیاز داشتند از کشاورزی خریدند که در خانه ای دور افتاده و چنان نزدیک به لبه دشت که میشناسیم میزی است که می, می, که می بایست آخرین خانه در دنیای مرعی بوده باشد و در آنجا نان و آردجو و پنیر و گوشت نمک زده و سایر چیزهای اینچنینی خریدند و آنها را در کیسه گذاشتند و بر تیرک آویختند سپس کشاورز را ترک کردند و از مزرعه او و دشت‌های انسان‌ها بیرون آمدند و به هنگام غروب دیدند درست در آن سوی یک پرچین با تابش ملایمی که می‌دانستند از آن این زمین نیست صد شفق که مرز سرزمین پریانه است بر فراز زمین می‌درخشد آلوریک فریاد زد لیرازل و شمشیرش را بیرون کشید و به درون شفق گام گذاشت و پشت سرش نیو و زند آمدند. اینک تمامی سوء زنهاشان به حسادت نسبت به الهام یا جادویی تبدیل شده بود که از آن خودشان نبود. پس از این لیرازل را صدا کرد در حالی که به صدایش در آن سرزمین شوم پهناور اعتماد نداشت شیپور شکارش را که با نواری به پهلویش آویخته بود بیرون آورد. بلبخایش نزدیک کرد و آوایی سرشار از خستگی و آوارگی سرداد. اکنون در درون مرز ایستاده بود. شیپور در روشنایی سرزمین پریان می‌درخشید. نیو و زند تیرکشان را در آن شفق غیر زمینی فرو انداختند و همچون لاشه کشتی در دریایی ناشناخته بر زمین افتادند و سپس به سرورشان حمله کردند. نیو گفت سرزمین رویاه ها مگر من به اندازه کافی رویا ندارم زنت فریاد زد اینجا ماه ندارد آلوریک با شمشیرش بر شانه زنت زد اما شمشیر خالی از جادو و کند بود و تنها اندکی او را آزرد. سپس دو نفری شمشیر را از او گرفتند و آلوریک را عقب کشیدند و نیروی مرد دیوانه مافوق تصور بود او را دوباره به درون دشتهایی که میشناسیم کشیدند به جایی که هر دوشان عجیب بودند و نسبت به عجایب به دیگر حسادت می کردند و او را از منظره کوهای آبی روشن دور کردند آلوریک وارد سرزمین پریان نشد اما آوای شیپورش از مرز گذشته بود و به هنگام گذر از آرامش رؤیایی سرزمین پریان یک نوای غمگین زمینی سر داده بود و فضای آنجا را آشفته بود